حدیث بیستششم فرمودی رسول صلی الله علیه و سلم و فو فویسق الوزق یا همون مارمولک یا همون سمارهای کوچک حالا تو گفتم تو سلاحات مختلف تو هر جایی که سلاحی دارن یک لفظی براش بکار هر چند که تو لغت فارسی وزق یه نوع قرباقه هست تو اسطلاح مثلا قشم یا جنوب ایران بهش گفته میشه کلپک یا کلپوک یا تو لغت بحرینی ها عرب, ج... عرب خلیج فارس بهش میگن برایسیه چون سبب مرض برس میشه خوصا ادرارش اگر رو پوست انسان اصابت بکنه سبب میشه که اون بیماری پوستی پوست رنگش از دست بده و سفید بشه بخاطر همین اسمشو گذاشتم برایسیه خود این مار مولک غذایش از انواع سوسک و انواع پشه و انکبوته و فبای سقه بخاطر فسق و فسادی که ایجاد میکنه در منزل ادراری که روی مصحف میکنه روی کتاب ها میکنه یا روی ظرف ها وقتی که مثلا یک ای بهش ایجاد میشه دومشو ره‌آ می‌کنه و اون دومش هم کامل سیانور هست و شده خیلی از اشخاص تا تو خود مثلا پیش ما پیش اومده که دومش توی یک قابلمه افتاده و نمی‌دونم تعداد اشخاصی که مردن ولی خب خیلی ا مسموم شدن اون عروسی هم بسری شدن و چند نفرشون مردن دومش خیلی خطرناکه حدیث ما در صحیح مسلم داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماین من قتل وازغ ففی اول الضربه فله كذا وكذا حسن و من قتل في الضربه الثانيه فله كذا وكذا قدر انقد انقد انقد کسی قدر اینذار و کسی این اینقد ثواب داره و کسی که در دومین ضربه اینقد و اونقد حدیث سی دیگری هم هست بازن در صحیح مسلم با لظزی دیگر من قتل لازقان فی اول ضربه و کتبت له مع تو حسنه کسی که در ضربه سوس ماری یا همون مارمولک با اولین ضربه بکششه له معتو حسن صد تا حسنه داره واف کرد یه دو در گفت فرت دونه دریک در دو کمتر سمون بار کمتر کم این در بحث احسانه برای در بحث کشتن که اگر این قدر سبب گذاشته شده بهخاطر اینه که اون حیوان زج نبینه شکنج نبینه بهخاطر هم میاددم تا جایی که میتونه تلاش بکنه که در اولین ضربه، اسم اون یا همون مولک را بکشه اون هایی که معمولا بین 10 تا 20 سانت اندازه یک بند انگوش یا دو بند یا اندازه یک انگش یا دو انگشته معمولا انسان با سعی بکنه که قشنگ بزنه با ضربه‌ای که فنی باشه باقدر معروفه او راس پا در بیاره حدیث دیگری داریم ما در صحیح ابن حبان اون هم تحسینش میکنه چیزی که من یاد دارم صائب نقل میکنه یک اممدم نزد اممونین عایشه و دیدم که یک نیزه اونجا گذاشته گفتم با این نیزه کار میکنی؟ فرمودن که من با اون مرمولکار رو میکشم توی منزل بعد گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفته که وقتی که ابراهیم علیه السلام نما اولقی ابراهیم فی النار لم تكن دب فی الارض الا اطفعت النار عليه غیر الوزر وقتی که ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد همه هیوانات میدمیدان در اون آتش که خاموش میشه غیر از این سوسمار یا این مارمولک نفس میکردن میدمی در اون آتش فامر الرسول هم قاتل براسول دستور به قتلش داد این قتلش و حالا شاید بگیم یکی از علتای قتلش ولی خب گفتم خود این جانور خود این جاندار سمی هست و محیط منزه به آلوده میکنه و به خاطر همین از بین بردنش در مقابل از بین یا کشتنش سبب گذاشته شده